بسم الله الرحمن الرحيم فصل الشفعة فصل بعدي ما دار رابط يلا شوف إيش هست شوف هست على باه مثال توزيتش بدهم بيهتر قابل فهمته تعريفي شو بقولنا دو نفر دريك زمین باهم شريكان حدوده دوت شو المشخص ليش باهم كاملا شريك سهمشون از هم جدا نشده با هم است حالا مشخصه که یکی مثلا نصف داره یکی نصف ولی این دوتا نصف هم جدا نیست اینجا اگر یکی از این دوتا شریک اومد سهنشو فروخت به شخصی جدید خب اون شریک قدیم حق تملک قهری براش ثابت یعنی به شکل قهری حق ملکیت مال همون شریک قدیمه مال این جدیده نیست در بحث مخلوط بودن مال که هنوز از هم جدا نشدن مرز و حدود مشخص نیستند حق مال شریک قدیمه مگر اینکه نخرد اگه این که خودش نخواهد. پس شفعه حق تملک اجباری و قهریست که برای شریک قدیم بر علیه شریک جدید ثابت میشه و برای دفع زرر هم هست خب و شفعه تو واجبتون بالخلطتی دون الجواری میگه شفعه واجب است با مخلوط بودن مال با شراکت دون الجوار, دون الجوار نه همسایگی یعنی زمانی که مالشون با هم مخلوط باشه در زمین با هم دیگه شریک باشند که سهمشون مشخص نیست از هم جدا نیست مرز حدود مشخص نیستند فقط ثابته نه در همسایگی دو نفر با هم دیگه همسایه باشند حق شفعه نداره شریک قدیمی پس شفعه واجبتون ای ثابتتون شفعه ثابت هست با مخلوط بودن مال یعنی با شراکت شراکتی که از هم مرز و حدود جدا نیستند نه با همسایگی اون هم فی ماین و دون مالاین قسم در اون چیزای شفعه ثابت هست که تقسیم می شود نه اون چیزی که تقسیم نمی شود مثلا میگه حمام کوچیکی که قابل تقسیم نیست شفعه ای درش نیست اما اگر قابل اي انقسام بود قابل تقسیم بود ها به گونه ای بزرگ بود که قابل تقسیم بود اینجا حق شفعه ثابت میشه و فی کل ما لا ينقل من الارض وحق الشفعه ثابت در هر آن چه که نقل نمیشه از زمین و غیره اقار اسم منزول و زمین و باغ و این چیزها رو میگند خب حق شفعه ثابت به ثمن لذی وقع عليه البيت بهمون همون ثمنی که بی برش واقع شده حق شفعه ثابت است باهمون همون ثمنی که بی برش واقع شده شریک جدید چقدر خریده؟ این شریک جد قدیم حق شفعه براش ثابته باهمون قیمت و هيا و آن یعنی شفعی علالفوری بر هست یعنی این حق شفعه بعد از اینکه شفی خبر شد که شریکش مالو فروخته این شفعه براش ثابت میشه بعد از آگاه شدنش بلفور علالفور به شکل فوری باید زود اقدام بکنه موقعی که شریک اومد که از شریکا اومد سهمش فروخت شریک دیگه فوراً بر اقدام بکنه که نه آقا حق حق منه و من نمیدمش به این شریک جدید اگر دانشو تأخیر کرد بدون عذر اون موقع حقش از دستش ساقط میشه خودش جلوتر میگه ان اخرها مع عليها اگر تأخیر کرد یعنی رفت حق شفعه کرد. مع القدرت عليها با وجود قدرت داشتن بر این اقدام خبر شد که شریکش رفته سهم خود رو فروخته این شفعه رو با آگاهی که داشت اینجا معامله صورت گرفته به تأخیرش اندخت یعنی خبر شد که شریکش رفته سهمشو فروخته قدرت اینو هم داشت که بره اعلام بکنه که نه سهم مال منه من حق ولی نرفت اقدام نکرد با وجود قدرت بر آن، یعنی عذر نداشت بطلت، شفعه باطل میشه چون مقصره دیده که شریکش رفته سهم خودو فروخته ولی اقدام نکرده وإذا تزوج امرأة على شخص وزماني كه ازدواج كرد با زني تزوج امراه وزماني كه ازدواج كرد با على شخص برقت زمين يا فيه شفعه كدار اون بود الشفيع به مثل بر میداره اون شکصبح همون شفی همون شریک قدیمی به محر مثل. دوتا شریکاند یک شریک سهمش داده بزنی مهریه و ازدواج کرده. شفی که همون شریک قدیمی است اونو برمیداره اون سهم شریکش رو که مهریش داده و مهر مثل به اون زنش میده و مهر مثلش شمون روز عقد و قرارداد اعتبار داره پس و زمانی که شخص ازدواج کرد یکی از شریک ها ازدواج کرد با زنی بر قطعی از زمین که درش شفعه بود شریکی بود شفی همون شریک قدیمی اونو برمیداره داره و مهر مثل پرداخت میکنه و امکان شفعاء و جماعتا اگر شفیها یک گروه بودن یعنی پنج نفر دار یک چیز شریک بودند خوی یکی سهم فروخت اینجا تا شفی وجود داره دیگه استحقوها على قدر الاملاک مستحق میشن به اندازه ملکی که دارند مثال میزنیم مثلا سه نفر با هم در یک زمین شریکند یک شریک زمینش رو سهمش رو می فروشد میمونه اینجا دو تا شفی دو تا شریک این دو تا شفی به اندازه ملکی که دارند مستحق هستند مثلا فرزن یکی یک سوم داره یکی رو داره خب اونی که نصفو داره به اندازه نصف گیرش میاد و اونی که یک سوم به اندازه یک سوم گیرش میاد فصل القراضو فصل بعدی در رابطه با قراض این هست که مالک مالش رو به یک کارکن بده تا در اون مال کار بکنه و سود اون مال بین این دو نفر بین مالک و کارکن شریک باشه بین هر دو تا باشه بله پس قراص این است که شخص مالدار صاحب مال مالش رو به شخصی بدهد به انوان کار کن سود بین این دو نفر طبقه قرار دادی که می‌کنند تقسیم میشه اینو میگن قراص ولی القراصی اربعت و شرایط قراص میگه چار تا شرط داره قراز چهار تا شرط داره خوب ان يكون على نابدن من الدراهم و شرط اولش اینه که اون قراز بر نقدهایی از درهم و دینار باشه بر سکه زده شده در دینار و درهم باشه که مخشوش نباشند اگرچه که هم باشند پس اول اینه که بر نقود زده شده از درهم و دینار باشه و مخشوش هم نباشند شرطش اینه که بر پول رائج دینار و درهم باشه که مخشوش نباشند دوه آن یأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقاً، او في ما لا ينقطع وجوده غالباً شرط دوم قرّاز اینه که صاحب مال در تصرف آملو مطلقان اجازه بده، هر چی میخری بخر، در هر چیزی که معامله میزنی برو تجارت تو شروع کن. او في ما لا ينقطع وجوده غالباً یا اینکه صاحب مال اجازه بده به عامل به کار در اون چیزی که غالبا وجود داره غالبا منقطع نیست اگر چه که در بعضی از اوقات هم منقطع بشه گیر نیاد ولی غالبا وجود داشته باشه مانند خورما مثلا که اغلباً یافت میشه در طول سال پس شرط اولش اینه که بر نقود زده شده از دیر هم دینار باشه که مخشوش نباشن شرط دوم اینکه رب المال عامل و در تصرف مطلقاً اجازه بده یا اجازهش بده در اون چیزایی که غالبا وجود داره و ان یشترط تله جزءاً معلوماً من الربح و اینکه کہ جزء مشخص شده اسودو براش تاین بکنه که آقا یک دوم مثلا مال توئه یک سوم مال توئه یک چهارم مال تو مشخص باشه اسود. و الا يقدر بمده مقدره بمدت نباش آقا من اینا رو شما رو میدم تو این مدت اینا رو کار میگیره این مدت مثلا رمضان ولا ضمان على العامل الا بعدوان وزمانتي بر عامل نیست مگر که تعدی بکنه عامل کارکن کن، زامن نیست مگر اینکه تعدی بکنه و اذا حصل ربح و خسران جبر الخسران و به زمانی که سودی گیر اومد یا زرری زرر با سود سرمایه جبران میشه کافیست